به نام خدای یوانی مهربان سلام افسانه ها عظیمترین و قنیترین بخش گنجینه ادبیات آمیانه هر سرزمین و دانشمندان جهان از اونها بونبان منبع تازهی برای تدوین تاریخ اجتماعی فرهنگی اقتصادی و منبعی غنی و پرارزش در پژوهش‌های شناسی استفاده می‌کنند افسانه ای رو از مردمان گچساران در استان کهگیلویه و بوی رحمت براتون نقل می‌کنم به نام افسانه سرگذشت دو خواهر برگرفته از کتاب قصه ها و هایی از گوش و کنار ایران به گردآوری محمد جعفری قنواتی در افسانه های مردم گچساران در استان کوهگیرویه و بو رحمت اومده که دو خواهر بودند که پدر و مادرشون رو از دست داده بودند و با هم زندگی میکردند اونها با قالی بافی نخریسی و کلفتی زندگی خودشون رو سپری میکردند خواهر بزرگتر حسود و بداخلاق بود و خواهر کوچکتر ساده و مهربون و تا دلتون بخواد خوش اخلاق روزی از روزها این دو خواهر مزد روزانهشون رو دادن و یک کله پاچه خریدن و به خونه بردن کله رو روی اجاق گذاشتن و خودشون هم شروع کردن به نخریسی کمی که گذشت خواهر بزرگتر به خواهر کوچکتر گفت تو کارت رو ادامه بده تا من سری به غذا ببینم پخته یا نه خواهر کوچیکترم قبول کرد خواهر بزرگتر رفت و دیگ رو از روی اجاق برداشت و همه ی کل پاچه رو یه جا نشست و خورد بعد هم جولنگ کفش توی دیگ انداخت و مقداری هم آب روی اون ریخت و دیگ رو روی اجاق گذاشت و برگشت و گفت غذا آماده نبود حالا حالاها طول میکشه تا خوب پخته بشه یه ساعتی گذشت خواهر کوچیکتر که دیگه طاقت گرسنگی رو نداشت بلند شد که بره ببینه غذا پخته یا نه که خواهر بزرگتر یه دفعه گفت بشین کار تو بکن گفتم که خیلی طول میکشه تا پخته بشه خواهر بیچارم نشست سر کارشو به نخریسی ادامه داد ولی از شدت گرسنگی داشت دلش ضعف میرفت بنابراین در یه فرصت مناسب دور از چشم خواهرش به سراغ غذا رفت و وقتی در دیگ رو برداشت متوجه شد خواهرش تمام کل پاچر رو خورده و چیزی برای اون نذاشته برگشت و به خواهرش گفت اگه تو گرسنه بودی منم گرسنه بودم چرا همه قزو رو خودت تنهایی خوردی و برای من چیزی نذاشتی خواهر بزرگتر با شنیدن این حرف از کوره در رفت و خواهر کوچکترش رو به باد کتک گرفت و خواهر کوچیکتر هم با ناراحتی و بغز خونه رو ترک کرد و سر به بیابون گذاشت دختر رفت و رفت و رفت و به تپهی رسید آروم روی تپه نشست و به یاد مادر مهربونش گریه کرد در همون حال با دست خاک های اطراف تپه رو کنار میزد که در میون خاک ها سوزنی رو دید دختر باز هم خاک ها رو کنار زد و زیر خاکها دری باز شد دختر با خوشحالی در زد، صدای زنی از پشت در گفت کیه؟ چکار کار داری؟ دختر گفت خانم، کلفت نمیخواین که براتون آب بیاره یا هر کار دیگه ای که بگید براتون انجام بده؟ اگه بخوایین من میتونم پیشتون کار کنم صاحب خونه در رو باز کرد و وقتی با چهره مهربون دختر رو شد مهر اون به دلش نشست و گفت خوش اومدی دخترم، بیا، بیا تو خلاصه زن به گرمی از دختر افسانه ما پذیرایی کرد و به اون گفت تا هر وقت که دلش میخواد میتونه اینجا بمونه از اون به بعد دختر هم با صداقت و پاکی هر کاری که میتونست برای اون زن انجام میداد راستی اونو بگم که این خانواده خیلی هم بودن و یه پسر هم داشتن که به سفر رفته بود و وقتی از سفر برگشت با دیدن دختر و کارهای اون و تعریفهایی که مادرش کرده بود، مهر دختر به دلش نشست و از دختر خاستگاری کرد و دختر هم پذیرفت و اونها زندگی خوشی رو شروع کردن. و بعد از مدتی هم خداوند به اونها پسر زیبایی داد و زندگی اونها شیرین تر شد. اما حالا بشنوید از خواهر بزرگتر که گفتیم خیلی حسود و بد اخلاق بود. بله، خواهر بزرگتر وقتی از این و اون تعریف زندگی و وضع مالی خواهرش رو شنید، حسابت همه وجودش رو دربر گرفت و با خودش گفت مگه من چیم از تو کمتر بود که نه شوهر کردم و نه صاحب اون همه ثروت شدم؟ ها؟ مشکل من چی بود؟ باید هر جور شده وارد زندگیت بشم و همه چی رو از بگیرم. خواهر حسود اینو گفت و رفت طرف خونه خواهر کوچیکترش و به مادر شوهر خواهرش گفت خانو من کلفتم شما به کسی نیاز ندارید کارای خونتونو انجام بده؟ مادر شوهر خوهر کچکترم که تازه عروسش فارغ شده بود با خوشحالی گفت چرا چرا دستن دستنهاست تو میتونی وردست اون باشی و تو نگهداری بچه بهش کمک کنی و خواهر حسود هم که همین رو میخواست با خوشحالی وارد خونه شد خواهر کوچکتر به محض دیدن خواهرشون شناخت اما هم اون و هم خواهر بزرگتر اصلا به روی خودشون نیوردن و به هم آشنایی ندادن و خواهر حسود توی اون خونه موندنی شد مدتی گذشت بعد از مدتی خواهر بزرگتر به خواهر کوچکتر گفت ای خواهر تو دلت توی این خونه نپوسید ها؟ بیا بیا بریم همین اطرافی هوایی تازه کنی. خواهر کوچیکتر که حدس میزد خواهر حسودش نقشهای داره بهانههای مختلفی آورد اما بالاخره با اصرار خواهر و مادر شوهرش ناچار قبول کرد و با اون به اطراف رفت تا هوایی تازه کنه اونا چند دقیقه این طرف و اون طرف چرخیدن تا اینکه خواهر بزرگتر گفت ای خواهر عجیب حواس تاب بازی کردم یادم بچه که بودی تو هم تاب بازی رو خیلی دوست داشتی مگه نه خواهر کوچیکتر با نگرانی گفت بهتره برگردیم الان موقع شیرخوردن بچه است بهتره که برگردیم اما خواهر بزرگتر که نمیخواست این فرصت رو از دست بده اصرار داشت که یک کمی تا بازی کنن و بعد به خونه برگردن و خواهر کوچیکتر هم به ناچار قبول کرد ولی اونا برای این کار تناب نداشتن و خواهر بزرگتر از خواهرش که گیسوهای بلندی داشت خواست تا اونا رو به جای تناب به درخت گره بزنه و دختر هم همین کارو کرد. کمی که تاب بازی کرد خواهر کوچیکتر به خواهرش گفت حالا، مییسم رو از درخت باز کن برگردیم خونه. دیگه داره دیر میشه. اما خواهر حسود و جفاکار گفت. خیال کردی میتونی تا آخر عمرت خوشبخت باشی. پس من چی؟ خواهر کوچیک تر اگه گیا پلنگی بیاد منو تکه تکه کنه چی؟ بیا بیا من از درخت باز کن. اما خواهر حسود و جفاکار؟ بی به خواهرش برا افتاد و رفت طرف خونه خوهر بدجنس وقتی به خونه رسید به دروغ گفت که خانم خونه به خاطر شید دادن به بچه زودتر به خونه برگشته و من خبری از اون ندارم شوهر خواهرش که سخت نگران همسرش بود از اون خواست به همون جایی برن که برای هواخوری رفته بودن تا شاید اثری از اون پیدا کنن ولی اونجا هم اثری از خاره کوچکتر نبود که نبود خواهر بزرگتر فکر میکرد که حیوانات وحشی خواهرش رو خوردن و با لحن ساختگی به شوهر خواهرش گفت بیچاره خانم کاش کاش من به جای اون گم شده بودم معلوم نیست چه بلایی سرش اومده <تصفيق> و بعد اشک تمساه ریخت و به همراه شوهر خواهرش به خونه خب حالا بشنوید از خواهر کوچیکتر افثانی ما کمی بعد از رفتن خواهر بدجنسه سرکله نه تا شیر پیدا شد دختر از ترس شروع کرد به لرزیدن و با التماس به شیرها گفت خواهش میکنم خواهش میکنم از خوردن من بگذارید من من یه بچه شیر دارم که توی خونه منتظر منه شیرها که دلشون به حال دختر سوخته بود گفتن باشه باشه ما از تو میگذاریم ولی کشت سر ما یه شیر با شیشتا بچه هاش داری میاد اینجا محاله که اون از تو بگذره شیرها اینو گفتن و از اونجا دور شدن چیزی نگذش که شیری با شیشتا بچه هاش از راه رسید و بدون معطلی به اون حمله کردن و دختر بیچاره رو خوردن اما دو خطره از خون دختر روی زمین ریخت بعد از مدتی به امر خداوند به جای دو غطر خون یه نی روی از غذا چوپون خانواده خواهر کوچی تر یه روز که گوسفندها ها رو برای چرا به اون حوالی برده بود اون نی رو دید و با خودش گفت عجب نی تشنگی میتونم با اون یه فلوت درست کنم و بعد باش برای گوسفندام نی بزنم خلاصه نی رو از زمین کند و با اون یه فلوت درست کرد. همین که خواست توی اون بدمه یه دفعه صدایی از توی اون بلند شد که گفت: بزن بزن چوپون، خوش میزنی میبینی خواهر به خواهر چه کرده؟ گیسوی خواهر رو به درخت بسته تنش رو شیرون خوردن. تو قطره خون چکیده. چوپون از این موضوع خیلی تعجب کرد. غروب که شد گوزفنده رو به خونه برگردون. شب که شد، پسر خونواده یعنی شوهر زن ای که شیرها خورده بودنش، وقتی فلوت رو توی دست و چپون دید، از اون خواست که کمی براش نی بزنه و این بار هم چپون به محض اینکه توی فلوت دمید، همون شعر از نی خارج شد. خواهر بجنس که اونجا بود فوری، متوجه موضوع شعر شد، اما نتونست کاری بکنه. این بار شوهر فلوت رو از شکون گرفت و توی اون دمید و شعرها با کمی تغییر از توی نی درومد و گفت بزن شوهر خوش میزنی میبینی خواهر با خواهر چه کرده گیسوی خواهر رو به درخت بسته تنش و شیرون خوردن دو قطره خون چکیده بچهٔ کوچیک خانواده که در حال بازی بود از روی کنجکاوی فلوت رو گرفت و خواست به دهنش نزدیک کنه که خاله بدجنس با عصبانیت و بی اختیار اونو ازش گرفت و انداخت توی آتیش ولی باز از توی فلوت همون شعر تکرار میشد شوهر زن تعجب کرد و متوجه شد که این شعرهایی که از داخل فلوت بیرون میاد یه پیامی که بازگو کنندهی سرنوشت زن بیچاره و مظلوم و کمی که بیشتر دقت کرد متوجه موضوع و مفهوم شعر شد و فهمید که هر چی بوده زیر سر خواهرزن حسود و بد جنسش بوده فوراً به چوپون گفت که اونو به همون درختی ببنده که زنش بسته شده بود تا شیرای گرسنه بیان و این خواهر بد جنس و جفاکار رو تکه پاره می‌کنن و به صدای اعمالشون و بعد با خودش گفت از قدیم گفتن کار بد نکن و نترس اگه ماه یه شب پیدا نشه دو شب پیدا نشه بالاخره سه شب پیدا میشه افسانه سرگذشت دو خواهر رو از مردمان شهرستان گچساران در استان کوکلویه و بوی رحمت شنیدید. برگرفته از کتاب قصه ها و افسانه های از گوش و کنار ایران به گردآوری محمد جعفری قنواتی. افسانه ها که بخشی از فرهنگ مردم هر قوم و ملتی به شمار میرن دشمنی و کینه‌توزی با دیگر ملت ها رو از بین میبرند و همبستگی و صلح و دوستی بشر رو نشون میدن. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت صالح راستار بهار گییان اجرا مهران دوستی، صدابردار ابوالفضل بیرامی تیه کننده زهرا عبدالله زاده. سانه دیگر بدرود